مصنوی معنوی مولوی برنامه ششم شش تنز و انکار کردن پادشاه جهود و قبولنا کردن نصیحت خاصانه خیش این اجایب دید آن شاه جهود جز که تنز و جز که انکارش نبود ناسهان گفتند از حد مگذران مرکبه استیزه چندین مران ناسهان را دست بست و بند کرد ظلم را پیوند در پیوند کرد بانگ آمد کار چون اینجا رسید پایدار سگ که قهر ما رسید بعد از آن آتش چهل گس بر فروخت حلقه گشت و آن جهودان را بسوخت اصل ایشان بود آتش ز ابتدا سوی اصل خیش رفتند انتها همز آتش زاده بودند آن فریق جزوها را سوی کل باشد طریق آتش بودند مؤمن سوز و بس، سوخت خود را آتش ایشان آنکه آن که بودست امهو الهاویه، هاویه آمد مرورا زاویه، مادر فرزند جویان ویست، اصلها مرفرها را در پیست، آب ها در حوز اگر زندانی است، باد نشفش می کند، کرکانی است. میرهاند رهاند، می برد تا معدنش، اندک اندک تا نبینی بردنش. وین نفس جانهای ما را همچنان اندک اندک دزدد از حبس جهان، تو الىه يسعد اطياب الكلام صاعدا منه إلى حيث علم ترتقي أنفاسنا بالمنتقى متهفه من الى دار البقاء ثم تاتينا مكافات المقال زعف و رحمتم منزل جلال ثم یلجینا الى امسالها کی نال العبد و مما نالها حاکزا تاروچ و تنزل دایما زافلا زلت علیه قائما پارسی گویم یعنی این کشش زان آید ایت آن چشش چشم هر قوم سوی مانده است کن طرف یک روز ذوقی رانده است ذوق جنس از جنس خود باشد یقین زوق جوز از کل خود باشد ببین یا آن قابل جنسی بود، چون بدو پیوه جنس او شود. همچو آب و نان که جنس ما نبود، گشت جنس ما و اندر ما فزود. نقش جنسیت ندارد آبونان. و نان. زیتبار آخر آن را جنس دان. ورز غیر جنس باشد ذوق ما، آن مگر مانند باشد جنس را، آنکه مانند است باشد آریت، آریت باقی نماند عاقبت مرغ را گر ذوق آید از سفیر، چون که جنس خود نیابد شد نفیر. تشنه را آید از سراب چون رسد در وی گریزد جوید آب مفلسان هم خوش شوند از ذره قلب لیک آن رسوا شود در دار ضرب تازرندودید از ره نفکند تا خیال کش تو را چه نفگنت، از کلیله بازجو آن قصه را، وندر در آن قصه طلب کن حسه بیان توکل و ترک جهد گفتن نخجیران به شیر طایفه نخجیر در وادی خش، بودشان از شیر دایم کشمکش، بس که آن شیر از کمین می در رو بود، آن چرا بر جمله ناخوش گشته بود. حیله کردند، آمدند ایشان به شیر که از وظیفه ما ترا داریم سیر، بعد از این پی سید میا، تا نگردد تلخ بر ما این گیاه. جواب گفتن شیر نخجیران را و فایده جهت گفتن. گفت آره وفا بینم مکر. مکرها بس دیدم از زید و بکر. من حلاک فعل و مکر مردمم. من گزیده زخم مار و گشدمم مردم نفس از درونم در کمین، از همه مردم بتر در مکر و کین. گوش من لایل یلدغ مؤمن شنید، قول پیغامبر جان و دل گزید ترجه نهادن نخجیران توکل را برجه جمله گفتند ای حکیم با خبر الحذر دع لیس یغنی قدر در حضر شوریدن شور و شر است رو توکل کن توکل بهتر است با قضا پنجه مزن ای تند و تیز تا نگیرد هم قضا با تو ستیز مرده باید بود پیش حکم حق تا نیاوید زخم از رب الفلق ترجیح نهادن شیر جهت و اکتساب را بر توکل و تسلیم گفت آری گر توکل رهبر است این سبب هم سنت پیغمبر است گفت پیغامبر به آواز بلند با توکل زانوی اشتر ببند رمز الکاسب حبیب الله شناو از توکل در سبب کاهل مشاو ترجیح نهادن نخجیران توکل را بر اجتهاد قوم گفتندش که کسب از ضعف خلق لقمه تزویر دان بر قدر حلق نیست کسب یستوکل خوبتر چیست از تسلیم خود محبوب تر پس گریزند از بلا سوی بلا پس جهند از مار سوی اژدها هیلا کرد انسان و هیلش دام بود آنکه جان پنداشت خوناشام بود در و دشمنان در خانه بود، حیله فرعون زین افسانه بود. صد هزاران تفل آن کی نکش، وان که او می جاستن در خانهش، دیده ما چون بس علت در اوست، رو فنا کن دید خود در دید دوست. دید ما را دید او نعمل اوز، یا در دید او کل غرض تفل تا گیرا و تا پویا نبود مرکبش جز گردن بابا نبود چون فضول گشت و دست و پا نمود در انا افتاد و در کور و کبود جانهای خلق پیش از دست و پا می پریدند از وفا اندر صفا چون به امر احبت و بندی شدند، حبس خشم و حرس و خرسندی شدند. ما ایال حضرت و خواه، گفت الخلق و ایالون للاله، آن که او از آسمان باران دهد، هم تواند کو ز رحمت نان دهد. ترجیح نهادن شیر جهت را بر توکل گفت شیر آری ولی رب العباد نردبان پیش پای ما نهاد پایه پایه رفت باید سوی بام هست جبری بودن اینجا طمع خام پایداری چون کنی خود را طولنگ دست داری چون کنی پنهان تو چنگ. خاجه چون بیل به دست بنده داد، بی زبان معلوم شد او را مراد. دست همچون بیل اشارت های اوست، آخر اندیشی عبارت های اوست. چون اشارت هاش را بر جان نهی، در وفای آن اشارت جان دهی، پس اشارت های دهد. بار بردارد زتو، کارت دهد. حاملی محمول گرداند ترا، قابلی مقبول گرداند ترا. قابل امروی قایل شوی، وصل جویی بعد از آن واصل شوی، سعی شکر نیمتش قدرت بود، جبر تو انکار آن نعمت بود شکر قدرت قدرتت افزون کند جبر نعمت از کفت بیرون کند جبر تو خفتن بود در ره مخوسب تا نبینی آن در و درگه مخصب هان مخصب ای کاهل به اعتبار جزبذیر آن درخت میودار تا که شاخ افشان کند هر لحظه باد، بر سر خفته بریزد نقل و زاد. جبر و خفتن در میان رهزنان، مرغ هنگام کی یابد امان. بر اشارت هاش را بینی زنی، مرد پنداری و چون بینی زنی. این قدر اقل که داری گم شود سر که عقل از وی بپرد دم شود زانکه که بی شکری بود شوم و شنار می برد بی شکر را در قهر نار گر توکل می کنی در کار کن کشت کن پستکیه برجبار کن باز ترجیح نهادن نخجیران توکل را بر جمله با بانک بانگ ها برداشتند کانریسان که سبب ها کاشتند صد هزار در هزار از مرد و زن پس چرا محروم ماندند از زمان صد هزاران قرن زاغاز جهان، همچو اژدرها گشاده صد دهان مکرها کردند آن دانا که زبون برکنده شد زان مکر کوه، کرد وصف مکرهاشان زلجلال، لی تزول منه اقلال الجبال، جز که آن قسمت که رفتند در ازل، روی ننمود از شکار و از عمل، جمله افتادند از تدبیر و کار مان کار و حکمهای کردگار کسب جز نام مدان ای نام دار جد جز وهم مپندار ای ایار نگریستن بر مرده و گریختن آن مرد در سرای سلیمان به تقریر ترجیح توکل بر جهد و قلت فایده جهد. زاد مرد چاشتگاه در رسید در سرا عدل سلیمان در دوید رویش از غم زرد و هر دو لب کبود. سلیمان گفت ای خاجه چه بود گفت اسرائیل در من اینچنین یک نظر انداخت پر از خشم و کین گفت هین اکنون چه می خواهی بخا گفت فرما باد را ای جان پناه تا مرا اینجا به هندوستان برد بو که بنده کان طرف شد جان برد نکز درویشی گری خلق، لقمه هرس و عمل زانند خلق. ترس درویشی مثال آنهراس، هرس و کوشش را تو هندوستان شناس. باد را فرمود تا او را شتاب برد سوی قهر هندوستان براب. روز دیگر وقت دیوان و لقا پس سلیمان گفت ازرائیل را کن مسلمان را به خشم از چی چنان بنگریدی تا شداواره زخان گفت من از خشم کی کردم نظر از تعجب دیدمش در ره گذر که مرا فرمود حق که امروز هان جان او را تو به هندوستان ستان از عجب گفتم گر او را صد پر است او به هندوستان شدن دور اندر است تو همه کار جهان را همچنین کن قیاس و چشم بکشاو و ببین از که بگریزیم از خود ای محال، از کی بر از حق، ای و بال. باز ترجیح نهادن شعر جهد را بر توکل و فواید جهد را بیان کردن. شعر گفت آره ولیکن هم ببین جهدهای انبیا و مؤمنین، حقت آلا جهدشان را راست کرد، آن که دیدند از جفا و گرم و سرد. هاشان جمله حال آمد لطیف، کل شیء من ظریف هو ذریف، دامهاشان مرغ گردونی گرفت، نقصهاشان جمله افزونی گرفت، جهت میکن تا توانی ای کیا در طریق انبیا و اولیا، با قضا پنجه زدن نبود جهاد. زانکه این را هم قضا ما نهاد کافرم من گر زیان کرده است کس در ره ایمان و طاعت یک نفس. سر شکسته نیست این سر را مبند. یک دروزک جهد کن باقی بخند. بد حالی جاست که دنیا به جست. نیک حال جاست. و اقباب جوست مکرها در کسب دنیا بارد است مکرها در ترک دنیا وارد است مکر آن باشد که زندان حفره کرد آنکه حفره بست آن مکر است سرد این جهان زندان و ما زندانیان حفره کن زندان و خود را وارهان چیست دنیا از خدا غافل بودن، نی قماش و نقده و میزان و زن. مال را که از بهر حق باشی حمول، نعم مالون صالحون خاندش رسول. آب در کشتی حلاک کشتی است، آب اندر زیر کشتی پشتی است. چون که مال و مالک را از دل براند، زن سلیمان خیش جز مسکین نخاند کوزه سربسته اندر آب زفت از دل پرباد فوق آب رفت باد درویشی چو در باطن بود بر سر آب جهان ساکن بود گرچه جمله این جهان ملک وی است ملک در چشم دل او لاشه است پستهان دل ببند و مار کن پرکنش از باد کبر من لدون. جاد حق است و دوا حق است و درد. منکرن در نفی جهدش جهد کرد. مقرر شدن ترجیح جهد بر توکل زین بسیار برهان گفت شیر کس جواب آن جبریان گشتند سیر روبه و آهوب و خرگوش و شغال جب را بگذاشتند و قیل و قال عهدها کردند با شیر جیان کندرین بیعت نیفتد در زیان قسم هر روزش بیابد بیجگر، حاجتش نبود تقاضای دگر قرعه بر هر که فتادی روز روز سوی آن شیر او همچو همچویوز چون به خرگوش آمد این ساغر به دور بانگ زد خرگوش کاخر چند جاور انکار کردن نخجیران بر خرگوش در تأخیر رفتن بر شیر قوم گفتندش که چندین گاه ما جان فدا کردیم در اهد و وفا تو مجو بدنامی ما ای انود تا نرنجد شیر رو رو زود زود جواب گفتن خرگوش ایشان را گفت ای یاران مرا مهلت دهید تا به مکرم از بلا بیرون جهید تا امان یابد به مکرم جانتان ماندین میراث فرزندانتان هر پیامبر امتان را در جهان همچنین تا مخلصی می کس راه برونشو دیده بود، در نظر چون مردمک پیچیده بود، مردمش چون مردمک دیدند خورد، در بزرگی مردمک کس ره نبارد. اعتراض نخجیران بر سخن خرگوش خام گفتندش که ای خر گوش دار خیش را اندازه خرگوش دار هین چلاف استین که از تو بهتران در نیاوردند اندر خاطران موجب یا خود قضا در پی است ورنه این دم لایق چون تو کی است جواب خرگوش نخجیران را گفت ای یاران حقم الهام داد مرضعیفی را قویرای رای فتاد آنچه حق آموخت مرزنبور را آن نباشد شیر را و گور را خانهها سازد پر از هلوای تر حق بر او آن علم را بکشاد در آنچه حق آموخت کرم پیله را هیچ پیل داند آنگون هیله را آدم خاکی ز حق آموخت علم تا به هفتم آسمان افروخت علم نام ناموس ملک را در است. کوری آن کس که در حق در شک است. زاهد ششست هزاران ساله را، پوزبند ساخت آنگو ساله را، تا نتاند شیر علم دین کشید، تا نگردد گرد آن قصر مشید. علمهای اهل حس شد پوزبند، تا نگیرد شیر از آن علم بلند، خطره دل را یکی گوهر فتاد کان به دریاها و گردونها نداد چند صورت آخری صورت پرست جانبی معنیت از صورت نرست گر به صورت آدمی انسان بودی احمد و بوجهل خود یکسان بودی نقش بر دیوار مثل آدم است بنگر از صورت چه چی چیزی او کم است جان کم است آن صورت باتاب را رو بجو آن گوهر کمیاب را شد سر شیران عالم جمله پست چون سگ اصهاب را دادند دست چه زیان استش از آن نقش نفور چونکه جانش غرق شد در بحر نور وصف صورت نیست اندر خامها عالم و عادل بود در نامها عالم و عادل همه معنی است و بس در مکان و پیش و پس میزند برتن ز سوی لامکان می نگنجد در فلک خرشید جان پرنامه های مصنوی معنوی مولوی را مین نوکتاش و شهباز ایرج دهیه و اجرا کردند.